مشورات به امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود اعلم ان الاعجاب ضد الثواب وافت الالباب بدون ای اوج نارواست و بر خلاف حق است منو و آفت عقل عجب آفت عقل این جمله را در هفته قبل مطالبی راجع به این کردیم این مقدار تطمه باقی مونده که این تطمه مشم حالا عرض میکنیم ولو خود عجب بحث مفصل داره ولی ما که بنا نداریم هرچی رو مفصل بحث کنیم بخدا سر مخوام خاتمش فرمود زیت و و آفت الالباب آفت عقل اوج یعنی چی چون که هفته قبل از کردم اوج یعنی خود را برتر و بالا دیدن یه نعمت یا یه کمالی در انسان هست انسان به واسطه این صفت کمال خودشو براتر و بالاتر از دیگر رو نصاب کنه این نارواز هفته قبل ارز کردم این صفت کمال تارتان در جسم انسانه خیلی قویه خیلی جمیله خوش و خوش صورته خوش اندامه مثلا اون به این صفتش اوج بکنه یا به پولش عجب کنه یا به عبادتش عجب کنه یا به درک و فهم و عقلش عجب کنه و خلاصه کمالی داره عجب میکنه ولی تمام عجب هفته قبل از کردم در این جهت شریکه که اگر کسی از خودش به قول من خوشش بیاد و خود رو برتر ببینه همه رو دیگران رو کوچه کساوشون بیعطنائی به دیگران میکنه برادران مسلمان رو دیگه جزء آدم حسابشون مخورد نکنه نکنه به این ها یه جور دیگه باشون حرف میزنه یه جور دیگه نگاه میکنه یه جور دیگه راه میره یه جور دیگه میشینه پاهاشو یه جور میندزه دستاشو یه جور میکنه نگاهش یه جور دیگه هست مثل آدم حسابی نیست و این چنین کسی که دیگران رو کوچک بشموره حاضر نیست باشون حرف بزنه حاضر نیست ازشون چیز بپرسه حاضر نیست موعظه اونها رو بپذیره اون وقت چگونه حاضر است که حق برادری رو ادا کنه اون اونها رو کمک کنه با اونها مواسات کنه با اونها مساوات کنه این چنین حقوق همه مختل و خراب میشه که تفصیل مفصلی داره و هر کدامش جداست ولی بنده امشب این کلمه با کلمه دومش دو رو میخواستم بگم الاجبو آفت الالبا آدمی که خود ملا میدونه دیگه درس نمیره بخونه میگه بنده ملا خیلی ملا به کسی اعتناع نداره میگه همه بیسوادم باید بیام پیش درس بخونم در مقام چیز یاد گرفتن نیم. این کسی که خودشو خیلی ملا میدونه دونه که در جهل و نادانی میمانه و ترقی و کمال پیدا نمیکنه این کسی که خودش رو عجب داره به عقل و درک و فهمش این اهل مشورت نیست با کسی مشورت نمی کنه من منده بهتر از همه می با کی مشورت کنه مردم عقلشو نمی مکرر تو روایات شاید به این مضمون داره که شاید در ذهنم آن یکیش که هست جفر سلام جفر سرامواله گاهی در امری میخواست مثلا اقدام کنه در کاری با یه قلام سیاهی مشورت میکرد تو نظرت چیه در اینجا عرض که این ابن رسول الله با این مشورت میکنی فرمودگاهی خدای تعالی خیر رو به زبان یک نفری که به نظرت نمیاد جاری میکنه بنابراین کسی که خودشو برتر از دیگران میدنه میگه مردم لایق نیستن گرسی طرف صحبت هم باشن حالا بیام در کارم با اونا مشورت کنم چه صلاحیت دارن و کسی که مشورت نمیکنه و کسی که مشورت نمیکنه در خلاف واقع زیاد واقع میشه و کسی که عجب دارد موزه از کسی گوش نمیکنه کنه و له تقلا اقضت هلعزت و خدا تو قرآن یه رو معرفی میکنه وقتی کار بدی میکنن مردم بهشون میگن اتقل الله از خدا بترس این کارا رو نکن این با حال تکبر اسم و گناه میکند و عزت و برتری خودش رو منشعه برای گناه میشه مرد اسمانو بر این, این آفت عقل دیگه عقل آفت چی بود تو دنیا؟ عقل اون بود که مرا به کمال برسونه، عجب مرا مانع از کمال میشه. عقل اون بود که راه خیر و شر رو به من رو فهمونه مشورت نکردن راه خیر و شر بر من پوشیده میشه. عقل اون بود که مرا به سمت کمال هدایت کنه، موعظه راه کمال است و راه اصلاح است کسی که موعظه نمیپذیرد بر خلاف عقلش در عمل میکنه. عرض می شد اجب... امیر المومنین تونه عجب البلاغه می عجب المرعب نفسه احد و عقله عجب کردن انسان به خود و خود رو برتردیدن این یه دشمنی با عقل خود کردن است ایسا علیه السلام در یه روایتی داره ایسی علیه السلام میگه دعوی تول مرزا مریضا رو همه رو من مداوا کردم کور مادرزا رو به ازن خدا شفا دادم ابرک اکمه و ابرس را سالم کردم مرده ها رو به ازن خدا شفا دادم و زنده کردم ولی احمق رو نتونستم کاریش بکنم هر چیز احمد کشیدم احمق رو نتونستم و شفا بدم قیل یا روح الله و من الاحمق احمق گفتن یا روح الله احمق کیست فرموت احمق اینه المعجب و کسی از خودش خوشش می المعجب بنفسه الذی يرى الفضل له لا عليه ما من مال خودشه بنابراین از عیسا گوش نمیکنه عیسا حالوش نمیشه این تو من می‌گم درسته خدا تو قرآن در در روایات عجبم هست خدا تو قرآن برماید به اینکه اون بهکمحل اون بهکن اعمالا میخواد خبر بدهم شما را زیون کارترین افراد کیست الذيقل سی هم فل حیات الدنیا وهم هم یحصبونه یحسنون گمراهن عملشون بر گمراهی و باطل است و خیال میکنه به خوب داره میره زیانکار کارترین افراده و خب خیلیه بدی میکنه عوضی میره احتمالشو میده که شاید عوضی بره خب این ممکنه یک کسی حالیش کنه یه وقتی اما یک کسی که داره عوضی میره احتمال عوضی هم نمیده میگه که من رفتم درسته این همون احمقه که ایسا میگه من نمیدوم چیکارش کنم این همینه که قرآن میفرمد به اخثری زیان کارترین فرد این فرده بنابراین اوج و از حلاک کننده های عجیب و غریبه که انسان از خودش خوشش شد. خودشو برتر بداند بالاتر این تمام شد و از می به این که البته هر مطالبی راجبهی هستش دیگه حالا بسته ولی این کلمه رو هم عرض میکنم یه عجبم عجبای مادمان متدین و مقدس و عدم خوبه اینم از عجبه های حلاک کننده است. این آقای خوبیه خیلی هم آقای خوبیه ولی خیال میکنه آقای خوبیه خودشو خیلی برتر از دیگران میدانه خیلی آقای خوبی هم اهل عبادت هم همه هم درسته واقعا هست ولی این بالاترین عیب شینست که خودشو با این صفت برتر دیگران میدانه این بالاترین عیبه که هست از میشود به اینکه که امیر شاید عجل بلاغه میفرمه سیعتون تسوعوک خیرون من حسنت توجه گناه کنی و ناراحت باشی بهتر از این است که عبادت کنی و خود رو برتر بدانی گناه کنی و ناراحت باشی این به خیر خیلی نزدیکتره تا اون کسی که عبادت میکنه و خود رو برتر از دیگران میدانه از از مرموم مجلسی رضمان الله تعالی در بهار جایی به این که در بنی اسرائیل یه بنده خدایی بود اینقدر بد بود اینقدر شریر بود اینقدر گناهکار بود که بنی اسرائیل این از خودشون خلع کرده بودند و اسمش شده بود خلیع بنی اسرائیل خبتن اصلا این از ما نیست این خلیع بنی اسرائیل یه نفر دیگر هم بود از جمله نیکام و عباد و زهاد بنی اسرائیل که اسمش شده بود آبد بنی اسرائیل و مرحوم مجلسی نقل میکنه چون بنی اسرائیل خضایه و قصه های عجیب و غریب داشتن ورمایت به این که در روایتی داره که این آبد اینقدر پیش خدا مثلا فرض کنید مقرب شده بود که یه عبریگاهی روی سر این بنده خدا سایه میانده یه روزی نشسته بود این آقای عابد این آقای خلی بنی اسرائیل اومد از این پلوی رد بشه گفتش من خلی بنی اسرائیلم و اینم عابد بنی اسرائیل خوبه برم یه دقیقه پیش این بشینم شاید خدای تعالی به خاطر ای به منم ترقم کنه رفت تا مخواست بشینه این خلی من ای اسرائیل است منم عابده ولی ای اسرائی که صلاحیت داره پیش من میشینه به تعبیر من درختش رو جمع کرد و گفت هلو من نشید خدای تعالی به پیغمبرمون زمان خراب کرد که برو به هر دو نفر اینا بگو عملتون رو از سر بگیرین همه گذشته های هر دوتون باطل شد گناهان گذشته تو همه باطل شد و خدا عفت کرد عبادت گذشته تو هم همه باطل شد واسطه اینکه که خود برتر از زیدانه عملاتون از سر بگیرین اون وقت مرحوم مجلسی نوشته وفی روایتن اون عبره رفت بلا اون یاد. دیگری که گناه کار بود پشیمون شده یا داود بشر مذنبین و اندر صدیقین به داود خطاب شد که ای داوود، گنهکارا رو بشارت بده و صدیقین رو بترسان از خدا یا چگونه گنهکارا رو بشارت بدم صدیقین رو ب... فرمود گناه رو رو بشارت بده که من گناهان اونها رو میاموزم و صدیقین رو بترسن که نبادا به عمل خودتون اوجب کنید زیرا اگر به تعبیر بنده که مداقه در حسابتون بکنم هیچی هیچی از می به این که این هم تمام شد عرض می شود یا آقای عرض کردیم نه رسول الله من یه بنده خدایی رو می بینم گناهکاره منم به اون گناه مبتلا نیستم حالا من خدامو بهتر از اون ندونم خب اون گناه برمیکنم و من نمیکنم مثلا از میکنم یک کسی مشروب خوره من مشروب خور نیستم خب از بهتر از اونم دیگه فرمود هیهات هات, هی هات. نبود خودتو بهتر از او بدانی زیرا که ممکن است خدای تعالی او رو بیا مرزه ولی تو رو در کارهاد محاسبه دقت دقت خرج بده تو حلاک بشی و او نجات پیدا کنه دو این دوایت هم بکنم یه باشه من دو تا دیگه مونده این دو تا رو بکنم خیلی طول نمیشه اگر اعجبک مایه فصباص و, و ناس من اگر خوشد آمد اگه مردم از نیکیات تعریف کردن تو آدم خوبی هستی تو این چنین اهل خیری تو چنین اهل عبادتی اگه دیدیداری حالت اوج برات پیدا میشه خودت خوب تو خودت فکر کن و ایوب خودت رو دقت بکن و ببین کجاهای کارات عب داره و در کردن خودت و یافتن خودت را ایگه خودت را واضحتر و مسلمتر بدون از تعریفی که دیگران بر نیکیات میکنند، چون تو خودت بهتر میدانی حال خودت رو متوجه حال خودت هستی دیگران خبر ندارند. بنابراین این توجه به نقصانهای انسان موجب میشه که این حالش از یه باید این روایت بکنم حضرت رسول صاحب و علی و علیم لا یکون المؤمن آقلن حتی یکون فیه عشر خصال خسال مؤمن عاقل نخواهد بود مگر ده خسلت داشته باشه دهتوشی که نمیخونم الخیر من هم معمول و شر من هم معمون خیر از او انتظار بره یعنی همه اینقدر از خیر دیدن همه منتظرن از خیر ای این اهل خیره این به دستش، به زبانش، به قلمش خیر جاری میشه. الخیرو من معمول انتظار خیر همه ازش دارن و شر او معمون است. شرش به کسی نمیرسه. این دو سفر یز تکس رو قلیل الخیر من غیره یه خیری که دیگران میکنند بزرگ میشمره کسیری از خیر که خودش میکنه کوچک میشمره. این مؤمنی است که قابلا و بعد این چنین آخریش می‌برمد الاشر دهمیش اینه که الله یرا احدن هیچ کس رو نبیند مگر بگوید هو وخیر منی این بهتر از منه چرا اینو بگه ان من ناس رجولان مردم دو دسته هستند یه دسته واقعا می‌بینه که اعمالش بهتره که خب بهتره دیگه واقعا بهتره میگه خب و خیرون منی در مقابل او توازو میکنه و با او ارتباط پیدا میکنه و کوچکی میکنه شاید که به او ملحق بشه و یه دسته دیگری رو میبینه که بعضی از اونها شرن و بدتر از اینان بازم با خودش بگه ان یکون خیر و باطن و شروحو ظاهر شاید یک کارهای نیکی در باطن داره که من خبر ندارم اینقدر افرادی هستند آدمای بدی به نظر ما میرسه گناهکار هم هستن بعضی از گناه هایی میکنن ولی یک کارهای خیری دارن که ایش که خبر نداره شاید او بهتر از من باشه. پس این مجموعن این چنین بکن اگر این چنین کردی یا همه رو بهتر از خود دانستی فقط علام مجده عظمت و علفت بالا میگیره و آقا خواهی شد به هر حال بنابراین این یک کلمه بگم و تمام شد و اون کلمه این که بزرگان فرمودن عجب میدونی چرا پیدا میشه؟ اوچه برای این پیدا میشه آدم نعمت رو میبینه ولی ولی نعمت رو یادش رفت میبینه که پول داره میبینه که جمال داره میبینه که زور و قوت داره میبینه که عقل و فکر داره میبینه که عبادت داره ولی یادش رفته که این آمار خدا یاد خدا نیم. ولی نعمت من اوست او به من داده هر کمالی که من دارم مال اوس و داده اوست من ناچیز و نالایق را لایق دانسته و به تعبیر بنده آدم حساب کرده اینا را به من داده او داده اگر یه چنین حالتی در تو پیدا شد و متوجه شدی که هر چه داری از اوست و به رحمت و لطف اوست و به انایت اوست دیگه تکبر نمیکنی من ناچیز و نالایق را به من لطف کرده و ایرو به من داده نعمت رو ببینم و به خودم نسبت بدم تو کور باطنی به قول من تو نعمت رو ببین و ولی نعمت رو یادت نره وقتی ولی نعمت رو یادت نرفت خدای تعالی من نالایق را این چنین نعمت داده چرا به وظائفم عمل نکنم و اون چرا که او فرموده است اطاعت نکنم اگه مال داده چرا احسان نکنم اگه علم داده چرا خدمت علمی نکنم و همچنین سایر مطالب گفتن اوج از اینجا پیدا میشه که انسان نعمت را ببیند و از خودش ببیند این از که حواسش پرت میشه اونی که نعمت را ببیند و از خدا بداند خدایا تور دعای صحیفه داره که خدایا هرچرا که قدر من رو پیش خودت بیالا بردی به اندازه او یا شاید دو برابر او من رو در نظر خودم کوچک بکن هر چقدر قدر من رو بالا میبری من رو در نظر خودم کوچک بکن این حال عجب در من نباشد که خودم را برتر از دیگران حساب کنم و ناور این عجب از جمله صفات مهلکه و آفت عقل انسان صلح علی محمد. آیات دلتنخات انعراب نمیشی. اچ بل احد نفسی. آحادو صاد عقله. هزارو نهجل بالا. هزارو نهجل ایسا فرمود داویت تو المزاف شفايت هم سی سد و بیست جلد بهار. سیعتون یسوعوی خیرون من حسنتون یعجبوی سی سد و و یک و, و این تو نجل بلاغم ظاهرا هم یاد آبود بشر المزنبین و انظر صدیقین صفحه سد و و یک دو جلد دو سفینه صفحه سد و, و یک جلد دو سفینه آبد و خلیه بنی اسرائیل صفحه سد و نود و هشت جلده هفتاد و ستی جلد و و فرمود قد غفر الله و انتم کافی صفحه سد و بیست جلده الاغا از آدیا که کمایت واسف اون ناز از می در نجول بلاغه های چاپ ابن عبل هدید که شرح ابن عبل هدیده بعد از اون کلمات پسر عامیه المؤمنین ابن عبل هدید من هزار کلمه گیرو ودم بعد نمی که تو نجول بلاغه نیست تو اون هزار کلمه ابن عبل هدیده کلمه ای تو شسته ابن عبل حدید چاپای در جلدیه ظاهرن 20 جلدیه اون جلد آخرش اون وقت نوشته کلمه فلان کلمه فلان هزار کلمه نوشته صف... کلمه 167ه اونجا مراجعه بفرد و اما ده خسلت هست در مؤمن صفحه 108 جلد یک بهار جدید تموم شد دیگه اللهم کشمد ک filt